گگرانی عزیز و خوشویزد شوتن شد. خوشحالین لبشی سی و دوی خنویک تی بی چشت مجاوری هجاری مکریانی حتی نوالاتن فرمون هاوریبن لگل منده. د یو نکریانی لوکاتی بسرهاتی جانی خو دغه رتوه کته ک ل ایتالیا ب اوله بخارېست جانی خوې گزرندو د نو سه عراقکان باندې ک ان چاپ کړ استعمار د بوب لاوکریته تا یواره پتر ل 200 دانېن بلاونکردبو وتم چن تان هې جلی کورډیم د برکردو ل سر پیاده روی وستم دنیا لجلک کم کو بووا په تل دانم ل دو سعاده ڕۆژێک لە خیابانی ڤکتۆرییا را دەبردم هەستم کرد دەستێک لەسەر شانمە جەوانێک بو پرسی ئەرێکاکە تورککی دەزانی منیش کمک کەمێک وتی منیش تۆزێک تورشیم دەزانی لە بیرم چوەتەوە حەز دەکەم لیت فێر بمەوە ناو میرجەیە فێر کارم ئەندندای حیزبی کۆمنیستیم. بەو شێک کە ئەویش فێرە ڕۆمانی بکا پێ همون هەموو ڕۆژ میرجە لە بندارێک چاوە نۆڕ بوو ساعت دملیتەوە. دم تا ایوارافه کا ودګرای مرجه جره یک بردمه مالخوی خوشکه جوانو سودا خوشو د پیری هبو په ماشین حياتی اکرد ترکیه زنی زوری جنیو با دولت دده دیګوت دا او همو خلکين بو تبلیغاتی خوين د بخارست خزاندوه هر لادې ول شهر او هر چی پیبلن رسخ خرج ایواله دکریو ی مشهچ مندس نه کوي لپر پرسی تو کومونیستی وتمباله معلومه وتی کرم دواما که، ما ترسه، بخوالم گره که هیچ کس کمونیستی خوش نوی، مرژه کوریشم درده که، اما یه رازد بو، چون کم مرژه بمنی و تبو کهر چند دایا، پنسلینی قاچاق دفروشه، زور مابو بو، آرقم کرده بو، کراسکم زور چلکن بو، هرچی و تیان کوتکت داکنه، و تم لولاتی اما کوت داکندن زور عیبه، جل شوشت میش بز میک بو، جل من دادکن، دیان برد، دیان شتو همویان به خوینی لسرمیز کلاک دکرد ک هر کس ای خومن بنسینه نوا برادران هر چی زوب گئیشتای کام کراس برج بودی دزی جاوره ګل قرو هراب ګره یک یک اعلان با دیواره و دابو نسرابو زور شرمه کراس مدزین امزه یک یک لا کراس دزراور کراس دزین تشنه کرد تیغ پو تننه چمچش لچمدنی یک یک دابو د نخرابه د دزرا او دم که لبیروت بوین دا چوین سیری ملکران لدم بحر برادره که خلقی شاری چکالای کودبو بو لکومونستی دا زور وشک لدیمن جنی روتی مایو لبر زور تو را بو دای کاری استعمار دبیل دنیا نمینه لبخاریست دریاچهی که زور گورو خوش دنو شر دایا پیدالین تشمجو یعنی چشمو جوگا لدوری سیر من کرد کتانی ملوان زور لوانی بیروت روت تر بون کرد سلمان، خوی لیه دخو کردم، حالم سند، بو اوانه چه ده فرموی؟ لیم رون اوانش استعمار ریس پردون تخریب بکن، دولت رومانی هر یک پنجا لی پولیان یا گیرفان پولی دابوینه دگل دا احمد اسمان تکلمان کرده بو رو جووتی بچول لفلانج سابون بکره. پروی با پینز لی ددن دو سابونم کریو خست مگیرفانی پاتولو لخوشیان بغر حتموه، که دستم برد گیرفان دراو سابون کوتون تاگرامو سابون لدوکان نما بو لکرکو کوا کدهاتم کوشم لای ارمنی کی آشنا برادان دا گوتي کوش بوده دورم کس د پیدا نبه کوش لنو یکسر کندارو دبو هموی با قیتان داخی روش نبو جوتی قیتان نبسینه بلام قیتان لعراق جوتی بشش فلسو زور هرزان بو همیشه دا جوتم دا باخل دابو لرومانیا لیم خلاص بو كيوش ليم بو با ورگه ماسي حل دراو پيم دا پيم ندا نا نحلت لبابد بو كوشي بود دروم ودواي قيتان كوتم هرچي لي دا پرسم دالي مغازة دم بو مغازة كوا با كتابن با تيالبست موا قرد دبسا پسا روشي ويستم بچ ما بنكي ايرانيكان كولانيكم دي وتم راگه كردكا موا باويدا روشتم او خي شكر توشي مغازي قيتان بو پيم ود جو تي با چن نازانم زانم پولا چه بو وتم اگر چی زور گرانه جوتم بدا حسامو و بلام سری قیتان بچریشتون کرابو تنکیت دانه بو بلای دو بو یخشی کوشن دا رابردم یکنوتی آغا فارسی میدونی وتم برو خیز توست نید بو به کوردی پی پیوتم آی قروان چون زانی سنایم من بیسو پن سالا لیره واکسی کارکم فرمورب چینا مسگافت جایک توش یکی یکی پشتیان کجی کلاو لبادی سپیاتم، بام هات، مسلمان نشدم مسلمان، اشاره بخوای کرد، مسلمان، بسم الله الرحمن الرحیم، عقوض بالله من الشیطان الرجیم، حرب ملمون و ساملی لامت کردیم نه، تجایشتم Albanی و نامی عبدالرحمنه، ایواره ک توش یک پیر پنجاه سالهاتم کچه کی دقل بو، نبکی تماشای سعی کردی کی، لیپرسیم، هایک. یعنی ارمینیت زورش جاری تریش خلکی بخالیس به ارمینیا اند زانیم و تم نخیر کردم و تی کورد نه کی قصد دغه چکه کم کی نه به بیته آشنا با کی من جیلوب اسماعیلغه سمکو کشتی من شبتم زور به داخوا باور که من راضی نه بم با واب جوان یواب کوجره شریک چوما کافه کخالت لحساد نشتبون تنیا لسر میز یک بم چیک یا جن یک اجازه هيا و تم فرمو دوای بطل شرابش یکرد. بابزی که حیزانه دو اندمی و دو اندمی. وقتی نام کار می نه. حس دکم بب معاش نازورتر یکتر من چاو پی بکه. منش وقتم بابزنیم. چون که من اگر کاری خم هبی بجای نایلم. قلم لوانی بیام واسرار اقد. ویستیپ چین پیک و سری سماهی با کاملی میدان کن. پیام ناخوش نبود. وقتی دائما دست پولی گازونه که توش کیفت لیه وره پولی خود بد. یان بمده یم ندهیدم. بازود در چین. بندش کر, -کر پنجالی رومانی مشک برد دامه که باقی خم بو مینته و تشریف رویشتو استاش نهاته و گرسون هاد و تی بین پاره و تم پیم نیا خوان کافه پیزانی سریکی روشان موتی داد لدست کسی رومانی افوی کردم و حالتک حالتک بگیرفانی بطاله و حتمه و بیرم لا اپیرای کرمین ده کرده و. که امی منیش بخیر بزمی اپیرای کرمین بو رومانی چاورشی گ خون شیرین و روح خوش اوشتش که ایمه نا مانه و ناموس پریزی نه لکن لكن بگر بګره و روسیا دا کم تر طرفداری هه شوانه میوزیک له میدانا لی ادراو سماو و هلپرشکي به کومل دکره ایمهش سیره سیري شلک جنیک پیلی کیشم وره بروین خمله دستر رابسکاوت گرت میوا زور کسمان لیکو بوو بو بو بو. جنتیو برمناده نادا وکل با شرمن بو متنوچک او ختم او به سنا ته بو کابره هات زوری تکاله کردم و تو بچو کاکا تکات لیا کم بچو وتم نه دستم لیا بردن و تو انبه ناشی آو میردکی تکات لیا کا آخری آلمانیک لدست جناتی و رزگار کردم بر عستی زور زحمت راجلاتی اویش نخوازد کرد لو بی شرمی خوشي باد روژیک احمد اسمانو من توشی پیررنیک زور شرو شرول بوین سوال لیکردین شتک منداه روجیک ل اتوبوس دا سوال کری کی مودرن با کاغذی کشکای ودا گره بهوش من شتک ده بمیرجم ود دو سوال کرم دی ووتی های هو های هو هزاران ها لوتا اوهاتون دک راون نهان بینن و بالاستوی میرجا اوهاره درنگی که تریکان پر میرد که یارش بیم دید که لبردم بو وامزانی طوبی گلها وتم ماما اوشیا وتم من فیلسوفم اوش تلسکوبا لیک بد وقت آسمان که لکه کشانو استریکانم زورم بلا و بو ایتر عمر ما تازه تلسکوبم تماشا نکرد وتو رومان یا حوث بو, بو بو دولت، نه انتوانی بو لهمو شونن کلخوز دانی، گوتیان دوازده کلخوز هیا، بردیانی نسیری یکیان، خانو چاکو رادیو، سینما، کتیب خانی زورجی افرین بو، که خای کلخوز قصیبو کردین و پاشان گوتی، که پرسیاری هیا جا بی بدا موه، من دستم حال یا نه، دکتوری که عرب گوتی چی ده پرسی، وتم پلا توتن کوردستان دیوه، وکل دیم بیوه، پیم سی و توی بالای کردستان کردستانه، ایرا ولایت کمونیستانه. هر حوت روش برانی لیه باره، عجیب و کومونیست کمونیست باشه. با جواب جوانش و هر پرسیم که خواویی، امشی ولار نزار و نمداره. توتن تو تن پیادگیانی و دیماکاره، لجیگی تری رومانیا بیاآونه بی. وتم بابو اداری خودمان انتخابات کن، بیرو بر واخوتن با آزادی دربرن روبینی مکن. چن خوشه بالا کمون لکی که میذاره، حاضر دن آزاد بی. بعدوس به امکار قربان بو بسرتو خورتو پارتی بازی، او دیگو من حل نبجری خود زانی، ایک یکی کهیتر دیگو فلان کس حل مبجره دایکو بابی جاسوسی نوری سعیدن، اویتر لولاوه دیگود هرکس حل مبجریه دایکی والیه که مودلم خاینه، هاو خو امش دست که در هاد ازادی قربسته لیر جگه نیه سلیم شاهین نوی عربی بغدایی لپیش دا دو جرچو بوا گستیوالان تامی خواردنی خوش و رابوردنی خوشی جحیلانی هل بند دنده دا ما بواوا که هات بوا بو خوی زور به بغداورده زنی کلسر کشتیش گوتیان نبیه بلای کردم او همون شیل گلتر بوا در راگش بوا بواکیش لیک تو را بوین جردن داوتیان توهماس بینوی کې ایرانی و توی سلیم جاسوسه حال بجره و بزم سګی فکره بهل کوت توهماس بیم دیت بومجره او تی په حياتم سلیم نه و, و هرگیز باسم نه کړدوه هټمو به کومل بومجره و سلیم تی اگر چی لشم قلسی به هر تو د نومنده بشرفي عراق ته اروپا و زور بونا فستوال ایمي 12 بو بو, بو نه و یک نفرو هر لا زیات بوندابوین کونګره د مزره بشی عراقیان به عراق قوّل دو ریز دبوا رنگ او چاقه میزری کلاش پشتیان کلاشی تازه خورمانی چم لریز دادانیشتم تصور چی مومیایی کرد او کندبود کدالن چه لکه دویددند حذل چهای دکن هر چیوی نگرو خبر نیکار بون دودیان کردمو بو به فشافشی دوربینه خی خالچی خی لروپارک نیوان نخشی کی اردنو عراقم کی شابو کردستانی ناصر بخوم نشانه کرد بو زور نسخم نسیبوه و هرکس دند که کم دادانی. هندی اک با قلم موانه کشم. بالم اشهدم بله هیچ وقت خوم نه چو. دوی جلسه هاتینه و کوریان بو گرتم. دیسپلین لا داوا. و تن برم من پاژی حیعتی عراقی نیم. قانون تن بسرم من دا نار و. و تین او بو خود باشه. کردو مورد حقی نیا خوی درخه. سبش چو مو جلسه. همان تاسو همان همام. او ورجته زیک درنگ هات مهمه منزل جام لبو چقه و حرا هر چوم قروقب و استیان لخوبري وتم براستی زور مردن هفتاو اونده کس لم نترسن چی تند بري مندوت و تیند منغوت اگر بجلی کوردي و بيو دا وقسي خود بكاي اجراءات در حق دكاي وتم نازن اجراءات شيا بارن پيتامبلم خوته نتو اندرم كن نچر بسنه اداري دي جاسوسي بلن جاسوس يك من كشف كردوه كد گل من هاتوه. او اگر باورین پیا کردن کلب چم دکن دچمه وین دچمه سفارت دلم دجی دولتم به بطیاره دم نرنو بغدا لیم ددن راستی بله او دم کاما سقباب ازای بیتو بغدای لوی اکتری دبینی نوا تو زیک ترسان پیانوتم نا نا کاکا کاکا که دل تو پیاوی خراپی بلان دلین تو دگل امهاتوی دبی بقصی رئیز بکی ایو اره چوم دفتری کونگره کبرایشی ایرانی، تودهی بنایی، نمازی همکاری کاری روزلاتیان بو. پیوتم، خواهش دکم. شتک منوسی وا. بام با فرانسویان، انگلیزی ترجمه مکن. منجوتم، آی با چاوان، توبیه نو، دس بچه دکره. هاوارو رو بانجی خون بکردی منوسی بو. شعری نش حاضر کرد بو. شودانشتم کرد نفرسی. سبای بردم بو نمازی. و توی سبای وروه، حاضره. سبای چو موه. یوارا بویان چرماو کا عراقی کان وتیانه بویمکاو محتلیکا یوارا چمووتی سبی وراو و تو مهم زانی تو دی له ایرانتی شوراوی بلام ایرانی درو بی اکترین یا نایکی وتی حای حرشم دکای نایکم ناشال مباتکم چاوم ارزینادی کرواتکم گرتو بر مستو لیوبون هاتن دستم بگیرن سیکم ترسان بان آقاي کازمی، آقاي کازمی، کور رجح الیک بگر حد دستی وتی ها هیچ خبره وتم امر بوم ترجمه نکری و ویلا بحالی من کردم جنادم دو روش داده کازمی وتي نمازي زور بی اخلاقی اگر هر پیاو بای دروت دگل او پیا و نکن دستی خوش بيا بریا پتریتی حال دعای نمازي هر شانو پیل راز دکرده او با کسی که او گوتي خطاي عراقه بو کازمی گوتي کوا چت پیه بينا. قس ساعتیک نه بیر ترجمه فرنسوی و انکلیزی تایپ کرایو بو و تی هر کاری کیریشته یا حاضرم پیموت ده تو خواس سبی ساعت ده ورا کنگره ببینم ببه ترجمانی قسانم سبی بچلی کوردیه و موا لسفی عراقین دانشتم کاظمی حد راست بوما و تومورا سرکوتين چوینه لای سروکی کنگره کی استان نا وکم لبیر چواتو فرنسی بو. بو و تم من کور دیکم سر به هیز دولتی کنیم حوار یکم های لطرف دنیا خوماوا آیا همیدم ها به کلم مینبره و رگم بدری حوار کم کم من دلیمو کازمی با فرنسایی بوداله لو دمدا دکتور صفا حافظ که حقوقی بو و سر کود هند یقصی رئیس کرد تیه نگیشتم رئیس لجواب جواب گوتي ایرا مینبره کی آزاده اگر یک یک بیاوی جوانش من پی بدار رگه ها باشه خود بک. سپاس من کرد هاتنه اخوار کازموتی صفه حافظ پیگود او دگل گل دسته عراق عراقیش قصه خو کړدو با قانون حق نیه رئیس پیگود او پیو د من به تنیا قصه بوخم دکمو سر به هیڅ دسته یک نیم قانونی ای ولیر کار نکه کا روز یک له جنگی خبر دره کچینی هر و کړدوو امریکایو حوالانن قلتو بر کړدو نو شمالی شمالي سر بو بچپل رزان کی به ودا کیشن لا یک د انګود نیوزلندیه څو سر کرسي وتی زور ساله اښت خوازین لیر شهر بو و کدیجی شر او خوین ريژی خبرات کین پیم سیر بو هر شو خوین ځندنی خلک لای چیني دوستان مول چپل دان شر هر شر ما به بو هیڅ پیا کوجک چپل لیب دین لجلسه څو البنده کډی سنوبر حمله وینګران کوتبون رئیس دستی لشانم ده وتی دوس به نورته حاتم ومنزل هر کس له و خو یوه د سیده تبریکت پیدل رئیس فرموی دادی بزانین چې د و وتم کا غفور خوای زانی نه است نه پښښویند نه و چاوتن بنوسرا و نه کوي خاطر دوس به هات چې مسر سکو به کوردی و تارو شرم خندوه و هم د نران د دګود اشکو دام لو کانگریه چوار زمان رسمی بو. دبویه اوتر ترجمه کرا با چوارانه کبریتی بون له روسی، فرانسی، انگلیسی، اسپانی. ورگیر لپشت پردوه کلیمه با کلیمه دیانگود. لمیزی پیش بیا چن چند کنیه کبو نوی زمانکانین لنوسرا بو. گویه پوشت لیوه دکردو سرکه دید دو کنه زمان را دکرد کده جهګې او شحبو کراسته خو دنجی کابلایوجر په زماني خوې بهستي دجا بو ورچقوله لچپلدان چپلز وریک یاشه کیج بدسکره کوهات دستي کوشیم ګوتی من ترکم دزنم دولته من چن دینه حقله کړت کردوا تو من ببښه زره خجالتم که هات مو منځل وتم هیڅ نه به لوک ته ترک شرم بتنګری چی عزیزۆ خۆشەویست و ئاشایانی دونیای کتێب لێرە داوبم شێوەیە هاتی نە کۆتایی بەشی سی دووی خوێنندەوەی کتێبی چشتی مجێوری هژی مکریانی تا شەوێکی تر بەختەوە بشین.